نقد صوفین همه صافیه بیغش باشد. ای بس خرقه که مستوجه به آتش باشد. صوفیه ما که ز ورد سهری مست شدی شامگاهش نگران باش که سرخوش باشد. خوش بود گرمحک تجربه آید بمیان تا سیه روی شود هر که در او قش باشد. خط ساقی گر از این گونه زند نقش بر آب ای بس رخ که به خون آب منقش باشد ناز پرورد تنعم نبرد راه به دوست آشقی شیوه ی رندان بلاکش باشد غم دنیای ی دنی چند خوری باده بخور حیف باشد دل دانا که مشبش باشد تال قصه جاده حافظ ببرد باد فروش گر شرابش ز کف ساقی مهوش باشد